سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی موضوع سخنرانی عبادت خالصانه و اثرات آن با توجه به فرموده حضرت زهره سلام الله علیها نوار شماره 3 قالت فاطمه سلام الله علیها من افعده الله خالص عبادته احبت الله علیه افزل مسلحته در دو شب گذشته با توجه به این حدیث که منابع حدیث رو شب اول خوندم از حضرت زهرا سلام الله ها این دو مطلب رو در پی گرفتیم که مطلب اول رو با اشاره گذشتیم و میگوزریم مطلب دوم مورد بحثه مطلب اول این بود که اگر ما دم از حضرت زهرا سلام الله علیه میزنیم می زنیم معرفت و محبت اون حضرت رو مطرح می کنیم آیا فقط تحت عنوان یک لقلقه لسان و یک اعتراف ظاهریش یا نشانه این محبت و معرفت دلدادگی و دلبستگی که دلبستگی حقیقی طبعیت عملی را باید به همراه داشته باشد نشانه طبیعیه عملی این است که گفتار اونها را دقیقتر بفهمیم اون چه که در اون گفتار و احادیث از ما خواستند در مرحله عمل و شعون مختلف زندگی عامل باشیم گر زبانا زبانان اظهار محبت بکنیم از نظر تظاهر دینی اظهار بداریم در ایام ازای اونبانو سوگواریم در ایام شادی اون حضرت مسروریم این که پایست یا اینکه که اون چه که از ما خواستند و تحت بیانات و احادیث و رفتار و کردارشون در تاریخ زندگیشون برای ما باقی مونده موظف به شناخت دقیقتر و عمل به اون شناخت هستیم این یه بحث بود که در همین حد گذشت قسمت دوم وارد گفتارشون بشیم این یک حدیث معروف سندشم محرزه که زهرا سلام الله علیها از این حدیث دو مطلب رو به اندازه سهم ما و امکان برداشت وگرنه خیلی عمیق‌تره دو مطلب رو ما باید ازش برداشت کنیم یک اگر افرادی در این عالم به مقاماتی میرسن و پروردگار عالم در این نردبان ترقی سیر الله افرادی رو در درجات گوناگون از مقام و منزلت معنوی قرار داده است بر اساس عبادت و درجه خلوص عبادت آن فرد است اگر فرموده ما خلقت الجن و الانس الا لیعبودون فلسفه آفرینش عبادت است. عبادت به اقتضای درجه ای از خلوص که دارد سعود درست می کند و به اقتضای اون سعود عبادت انایت پروردگار را شامل می شود و عنایت پروردگار این فرد را در پله ها و رتبه های مختلف به اله الله قرار میدهت و در اثر اون مرحله ای که قرار گرفته است آثاری خواهد داشت خود حضرت این یک مطلب که مسئله عامه که می‌خواهد در این حدیث اینو به ما بفهمونه می‌خواید بالا برید می‌خواید قرب خدا پیدا کنید می‌خواید آثار وجودیتون ارزندهتر و بالاتر باشه در این عرصه چی و چند روزه عمر همه هممتتون را بگمارید به مسئله عبودیت و خلوص در عبادت تا به اقتضای این خلوص در عبادت به مقام رزوان الهی نائل شوید مقام رضای الهی کالا یه مقدار این قسمتش بحث نشده بحث خواهیم کرده الله. اما نکته دومی هم که خیلی جالبه همین حدیث ما رو به اون مطلب هم توجه میده اگر خود حضرت زهرا سلام الله ها در درجه ای قرار میگیرد که پیغمبر بوسه بر دست او میزنند و اون همه ارزش و مقامات معنوی دارد خود اونها هم بر اساس این سیر به اون درجات رسیدن چون ممکن بعضی ها تصور کنن خداوند برخی را در یک درجه بالاتری قرار داده است چه اونها بخواهند چه نخواهند اگر اینجوری باشه با من و شما هم مطرح میشه خداوند بین من و شما مثلا تو مقوله علمی بعضی ها را از نظر علمی در یک رتبه از علم قرار دهد که بقیه را قرار نده از نظر مثلا مقام معنوی بعضیها رو در یک درجه بالایی از معنویت قرار بده دیگران رو قرار نده خب اینجا پس این بحث مطرح میشه حالا از آیات امشب انشالله اشاره خواهم کرد انایت پروردگار نسبت به بندگان روی حساب و کتاب و معیار و ملاک است یا بی حساب و بی کتاب و بدون هیچ دلیل و حکمت یا اینکه بگیم هیچ نمی‌فهمند از این سهال خارج نیست یک ما اصلا نمی‌فهمیم که چرا بعضی‌ها یک مقامات بالایی دارند در یک رتبه‌های عظیمی از ارزش‌های والای معنوی و انسانی قرار گرفتند و واقع شدند آیا این همون بحثی نمی‌شود که امامان ما فرمودند در بحث توحید اگر به مرحله تأتیل رسیدید مردود است اینکه که میشه یعنی ما هیچی نمیفهمیم این یک این قائله به تأتیله دو پس این همه آیا و روایت که حکمت رو بیان میکنه چیه؟ اگه بنابود هیچی در این زمینه نفهمیم حق ورود در این بحث رو نداشته باشین پس آیاتی که حرفا رو میزنه که نمونهش رو امشب با آیا میخونم با روایت پس اینا چیه؟ پس نمیتونیم بگی ما یکی نمیفهمیم نه به اندازه ای که حق فهم داریم باید وارد بشیم حالا به اندازه ای حق فهم وارد میشیم یکی از این جلو جلوب ماست خداون بی دلیل بی حکمت بی مسلحت, بی ادالت یه اده رو خواسته دیگه به یه درجاتی برسند برای یه ادم نخواسته خب این که که خود خدا در قرآن میفرماید اگر شما مرا قائل شوید که فائلیم که فعل عبس دارم این که توهین به خداست افه هسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لاتر جعون تو قسمت عبسش یعنی کار من بیهوده و عبسه حساب و کتاب نداره روح حکمت نیست، حکیم تمام رو بر اساس انایت و حکمت خودش قرار میده پس این درجات مختلفی هم که داده بر اساس حکمت. من قبل از اینکه وارد بحث قرآنی بشم، یک حدیث بسیار جانانه ای رو در این رابطه به عنوان یک نمونه ارز کنم حدیث مفصله ولی به عنوان نمونه مرهوم علامه مجلسی در جلد هیجده بهار صفحات 395-396 297 این حدیث مفصل رو نقل می کنه قسمتی از این حدیث رو جزایی دید من بخونم خداوند تیغمبر رو خطاب میکنه در شب معراج یا محمد صلی الله علیه وآلہ اینی که به نبوح. من تو رو برگزیدم برای نبوه استفای کردم تو رو انتخاب کردم و بعض تو که به رساله و تو رو مخوش کردم که رسول باشی بری تو جامعه و امتحن تو علیین بلبلاغ و شهاده الى امتك. علی رو مورد امتحان قرار دادم که برای ابلاغ و شاهد بر رسالت تو بودم توی این امتحان مورد آزمایشش قرار دادم و جعلته حجتا فلارض بعد از اینکه امتحانش کردم او رو حجت در روی زمین قرار دادم اگر انی فل فلارض خلیفه قرار میدم این امکان رو من قرار دادم که بتونه خلیفه در ارض بشه ولی برای اینکه این امکان به مرحله فعلیت در بیاد این قوه به مرحله حقیقت برسه حتی در این حدیث میفرماید من علی را مورد امتحان قرار دادم و جعلته هجتاً فی الارضه مأکه و بعدک و هو نور و اولیائی. و اون نور همه اولیای من شد بعد از اینکه امتحانشو داد در این مرحله امتحان نشون داد که میتونه در این درجه برسه اصول کافی جلد اول صفحه 242 حدیث شماره یک اومد خدمت امام علیه السلام به امام صادق ارش کرد که اخبرنی انه هاذ العلم ما له لا یزهر کما کان یزهر مع رسول الله آیا این علمی که در پیش این علمی که شما داری و این درجه از حقیقت که برای شماها خدا داده و این آشکار نیست برای دیگران اونگونه که برای پیغمبر آشکار بقیه برخوردار نمیشن آیا برای شما همه اون درجات علمی انبیا آشکار یا نه و به چه صورت قاله فزهک عدی علیه السلام امام علیه سلام میگه پیش پدرم این سوال رو کرد تا این سوال رو کرد پدرم خندید و قاله اب الله عزوجل ان یطلع علی علمه الا ممتحنا للايمان به خدا عبا از اینکه این مقام علمی را به کسی بدهد که او در مرحله امتحان ایمانی نسبت به این درجه امتحان نشده باشد صلاحیت داره ظرفیت داره خوب دقت کنید حالا وارد بحث آیات میشم و حدیث حضرت زهرا چرا از طرف خدا افضل مسلحت به بعضی ها داده میشه به بعضی ها داده نمیشه به جهت سعود اخلص عبادتشه وگرنه همینجوری خدا حکیمه خداوند قضا و بی حساب و کتاب در عالم به بالله کار نمیکنه این توهین به پروردگار عالمه پس میفرماید اگر از طرف خدا افاضه و بخشش است خدا که بخیل نیست خدا که نعوذ بالله حسادت نمیورزه به شما بده به شما نده میگه من نظام گذاشتم همونطوری که باران رو از آسمان میفرستم و این بدری که شما در زمین میپاشی یه جای زمین منطقی اینجا اختیاری نیست در ما اختیاریه یه جای زمین شرایط زمین به گونه است که از این آب می تواند بگیرد و این بذر رو رشد بده یه جای از زمین به گونه ای است مثل کویر خشک پر نمک سنگلاخ سنگریزه اونچنانی هر چه آب بارانم از باران بریزه شرایط رشد دادن درش نیست با این تفاوت در من و شما که این شرایط مساعد رو فراهم کردن در زمین دست زمین نیست در من و شما دست من و شما هست. اون عنایت در زبان قرآن و احادیث به رحمت تعبیر شده که این چند شب داریم اشاره می‌کنیم رحمتی که جنبه رحیمیت پروردگار است و رحمت خاصه پروردگار نه رحمتی که جنبه رحمانیته که رحمت آمشه. شد حالا اجازه بدید من از قرآن شواهد ذکر کنم سوره آل امران آیه هشت این آیه‌ای که خیلی هم دستور دادن تو قنوت نماز زیاد بخونید ربنا لا توز قلوبنا بعد اذ هدیتنا و ملتونک رحمه اول به همین آیه نگارش سطحی بعد یه مطلبی از مرحوم علامه طباطبایی در المیزان زیل این آیه که توجه شیعه زیواییشون فرمودن بعد با توجه به آیات روایات دیگه رب بنا میگه خدا رو اینجا با رب صدا کن مربی من پرورش دهنده من میخوای منو رشد بدی بیاری بالا لا تزق قلوب بنا بعد از هدهی کنا غلب یکی از دلائلی که اسمش قلبه اینه که حالی به حالی میشه از این حالت به اون حالت در اومدن از اون حالت به این حالت در اومدن این رو قلبش میگن این قلب من زمینه وجودی من میتونه منقلب بشه رو به حقیقت بره منقلب بشه خدای نکرده رو به زلالت و سقاوت و آلودگی ها بره میشود این دل بعد از هدایت حتی دو چهار زیق بشه طبق آیه قلوبنا بعد از هدیتنا بعد از اینکه منو هدایت کردی حق رو رساندی منم حقو پذیرفتم خدایا این کمک رو در حق من روا بدار یعنی من میخوام که او روا بداره مثل اینکه بعضی وقتا مثلا یه جوونی میاد به معلمش به مربیش میگه من میفهمم دارم آلوده میشم متوجهم هوای نفس داره منو بیچاره میکنه شما میتونی کمکم کنی یه کاری بکن آلوده نشم خب یه جوان عین این جوان این حالتو داره نه توجه داره، نه میاد سراغ یک معلم و مربی از او بخواد کمک هم کن که من آلوده نشم، فردای قیامت اون جوانی که هدایت نشد آلوده مند، بگه که خب شما باعث شدی اون جوان آلوده نشد، خب به من این کمک نکردی کردی؟ میخواد او اومد از من خواست که نیمدی بخوای، این فرقش هم باید ببینیم همین که میگه ربنا لا تز قلوبنا بعد از هدیتنا و حبلنا ملدن که رحمه خدای اومدم در خونه تو از تو میخوام کمکم کن حالا که میخوام بعد از هدایت گمراه نشم دلم آلوده نشود چی میخوام حبلنا هبه کن موهبت کن عنایت کن به من چی رحمتن من لدونی از طرف خودت رحمتن رحمتا نکرست این نکته ای که اینجا مرحوم علامه تبا ذکر میکنن چرا نکره ذکر شده در این آیه این ظریفه نکره در جایی میگن که نسبت به او شناخت آگاهی و معرفت نداشته باشیم معرفه در است که معلوم مشخصه یه وقت من میگم یه کتابی حالا چیه نمیدونم چقدر مهم کتابه ولی چقدر نمیدونم یه وقت میگم فلان کتاب معین که میشناسیمش مشخص میشه رحمتن میگه از بس رحمت خدا عظیم مهم آثار عدیده انایتی پروردگاره مثل خود خدا مگه کنه شما میفهمیم چیه ولی میفهمیم این مقدار مثلی که میفهمم کتابه اما چه کتابیه دیگه نمیدونم پس این مقدارو میفهمم کتاب آجر نیست کتاب مطالبه به درب بخور داره کتاب اگه بتونم اهلش رو پیدا کنم بفهمم چه خبره اما چه کتاب دیگه نمیدونم رحمت رو میدونم که چه آثار انایتی داره ولی چقدر اینا دیگه برای من مبهمه لذا میگه بنا لا لاطوز قلوب بنا بعد ازهده تنا و وَهَبْنَا لَنَا مِلَّةً كَرَحْمَةٍ رحمتی خب حالا بیایم از قرآن استفاده کنیم اعراف آیه 156 و رحمتی وسعت كل شیء این یک آیه این رحمت عامه است دیگه رحمت خاصه که نیست وسعت كل شیء حتی اون رحمت شامل این لیوان هم شده که موجودیتشه خدا انایت کرده ایجاد کرده اون رحمت شامل یزیدم شده خدا حیات بش داده وجود بش داده عقل بش داده امکان ایمان آوردن بش داده ولی استفاده نکرده آیا این که میگیم خدایا رحمتت رو شامل حال ما کن این رحمت امه است نه اینو چه ما بخوایم چه نخواییم خدا داده بر مبنای علی الوهیتش که که فیل این چنانی نکرده این رحمت است که وجود من و شماست اما حالا قرآن رحمت دیگرم هم میگه سوره بقره آ 157 تو شبای جمعه اینو بحث کردیم من یادآوری میکنم اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون اولائک که, اولا که کیه و قبلش بخونیم قبلش کیا هستن ولنبلونکم به من الخوف والجو و نقص من و والانفس و وبشر و بشر سادرین الذین اذا اصابتهم هم مصیبه قالوا انا لله و انا راجعون اولا عليهم صلوات من ربهم و رحمه پس این رحمت به همه نمی رسه اونایی که لنبلو و نکم توی امتحان قرار میگیرم. در موارد گوناگون گونه بزنگاه آیه اساس زندگی نمی لغزن در مصائب ثابت قدمان اولایی که علیه هم و رحمت پس یک من ربهم رب و رحمت پس این رحمت رحمت خاصه سوره بقره آیه صد و پنج و به رحمتهی من یشا من یشار رو داشته باشید خداوند یختص و اختصاص میده کم کم از کلیت اومد دایره زیغ خصوصیت پیدا کرد و اللهو یختص رحمت رحمت خودش را اختصاص میدهد به یه دسته خاصی که من یشا برای اون اجهی که میخواد طبق دو تا آیه قبله اینایی که خدا براشون میخواد کسانی هم که خودشون یه کارایی بادات بکنن دیگه اونایی که وبشون صابرین الّذین اصابته مصیبه کذا و کذا اینها که علیهم صلوات و به بهم بر رحمت پس رحمتی که اختصاص میده بر مبنای یک کاراییه که بنده باید انجام بده که میخوام بگم حضرت زهرا سلام الله علیها یک کاسه کرده همه آیاتو شما یه عمر زحمت بکشید تفسیر بخونید آیاتو ببینید تا در بیارید حضرت زهرا آلمه حقیقی قرآنی آلمه حقیقی قرآنی همه رو در سینه خدادادی خودش گرفته خلاصه کرده به شما گفته گفته من اصعده الله، خالص عبادته احبت الله و علیه افضل مسلحته همه اینا میاد در عنوان خلوص در عبادت خلاصه میشه حالا شاهد میارم دقت قطعه برمایید ولی میخوام اینجا دوتا هدف دارم یه هدف عظمت کلام معصوم هدف دوم کلام معصوم را اگر براش عظمت قائل شدیم دقت در عمل باید چقدر اساسیت نشون بدیم یعنی واقعا باید بترسیم به هر نسبتی که عبادت نداریم یا عبادت من از خلوص کاسته میشه به همون درجه از مراحل سعود سقوط میکنیم و این سقوط در عالم هستی یعنی بیچارگی به بی این نکته باید توجه داشت حالا دقت بفرمایید. و اللهو یختصو به رحمتهی من یشا خدا برای کسانی که بخواهد یا میخواهد این رحمت رو اختصاص به اونها میده که طبق ظاهر آیه و آیات دیگر مجملان خب چطور خدا این رحمت اختصاصی رو برای یه عده میخواد؟ خدا مگه با بعضیا حساب شخصی داره مگر خدا نعوذ بالله تو دستگاش راه داره حکیم آقا خودش تو آیات داره توضیح میده میگه اونایی که این کارو میکنن این نتیجه رو به اونا میدم اونایی که در سوره احزاب آیه چهل و یک، چهل و دو، چهل و سه خیلی راحت این بحث رو توضیح داده با یکی دو تا روایتی هم که انشاءالله فرصت بشه خدمتتون بخونم در سوره احزاب آیه چهل و یک یا یا لذین آمنو اذکر الله اذکرن کسی را ایمان آوردی؟ ایمان آوردن که به اختیار خودمونه پس باید واردی ایمان بشیم حالا که ایمان آوردیم اذکر الله اذکرن کسی را خدا را یاد کنید خیلی هم یاد کنید یاد خدا یعنی چی؟ اقمه لذکری نشانه یاد خدا چیه؟ بینی و بیناللهی حالا اینا مفصل بحث داره من در حد اشاره عرض می کنم بینی و بیناللهی در بزنگاه های گناگون گناه لغزش عامل لغزش چیه؟ میل دیگه حواست عامل به طرف خدا رفتن چیه؟ توجه به خدا یاد خدا خب حالا میگه اذکر الله ذکرمی کسی را خیلی خدا رو یاد کن تو هر بزنگاهی همینجا اجازه بدید من یه حدیث بخونم کافی جلد اول صفحه 28 حدیث شماره 33 از باب عقل و جه امام صادق علیه السلام حدیث خیلی جانان است یک دنیا بحث داره لیسا بین ایمان و کفر اللا بلا ثول بین ایمان و کفر نیست مگر کاهش عقل یعنی اگه عقل کم نداشت آدم ایمان ولی نمیاد سراغ کفر بره حضرت بعد خودشون توضیح میدنوا تون خود حضرت توضیح فرمودن اجازه بدی توضیح حضرت رو بنده بخونم قال امام ببخشید قیل گفته شد به امام و کیف ذاکیاب نرسول الله یعنی چطور اینایی که ایمان نمیارن و به این درجه از عشق به اله نمی رسن که چی چیزی کم دارن و چطور قال حضرت فرمودند ان العبد یرفع رقبته الى مخلوقن سلو و اخلص لله تا الله لذی یوریده بی اشرمن ذالک. تو خود امام دقت فرمود میگه چرا من میگم این کاهش عقل داره به جهت اینکه در اون جایی که دستش رو به سوی غیر خدا دراز میکنه مثلا ترج کنید حالا این دسترسی غیر خدا دراز کردن معانی مختلف میتونه می داشته باشه یه معنیش که الان ما میتونه باشه در این بحث عرض کنم. آقا خدا گفته رشوه نکر خدا گفته دروغ نکن خدا گفته به نامحرم نگاه نکن خدا گفته دنبال شکم و شهوت از طریق حرام نرو دوستان ناباب هوای نفس آقا توی جامعه نمیشه دیگه مردم اینجوری هم ما باید اینجوری باشیم این اقتضای محیط کسی که در این دو پله دو کفه ترازو خدا رو رها میکنه به اون طرف میچسبه آیا بی... یا دیوونه است یا عاقل اگه دیوونه باشه که تکلیف نداره بحثا مطرح نیست اگر عاقله به اندازه اقلش تحلیل کرده که این کانال برای من نفعی داره مزیتی داره امام میگه نمیفهمه که نفرسان حقیقی خداست لذا دقت بفرمایید؟ ان العبد يرفع رقبته الى مخلوق روی میل و رقبت دست به سوی مخلوق دراز میکنه دنبال مخلوق میره فلو اخلص نياته لله اگه خالصانه به جایی که دست به سوی مردم دراز کنه خواست مردم رو ببینه خواست خدا رو میجیز آتاه الله الذي يريد اون چیزی که اراده کرده بود می‌خواست خدا بهش میداد اصرم ازالک زودتر از اونا برای اینکه وقتی قوی تر هست نظامی دیوان شعر معروفی داره دیگه نظامی گنجوی خیلی قوا هم هست این دیوانش به خصوص در جهات عرفانی معرکه کرده یک قسمت عمده دیوان نظامی لیلی و مجنونه اصلا عمده بحث لیلی مجنون تو آثار نظامی دیده میشه سمبولیک هم هست عشق مجنون رو در مورد لیلی سمبولیک تصور کرده سروده حالا به خضای زوغ شعری و میزان دریافت حکمی که داشته تا میرسه به اونجا مفصل میرسه که لیلی تب کرد بیمار در همین بیماری مرد و مجنونم در بیماری لیلی دیگه مجنونتر شد میگه وقتی که لحظات آخر حیات لیلی شد یه به شعرش خیلی زیباس وقت میگیره وسیعتنامه ای داره خطابه به مجنون قوه هاست. خلاصش اینه به مادرش میگه مادر من دارم میمیرم این نامه رو میدم به شما که نوشتم برسونید به مجنون مجنون نامه رو واکر چی نوشته میگه مجنون شیفته من بودی منو دوستشتی علاقه من من بودی فدایی من بودی به منم نرسیدی منم که مردم ولی میخوام یه موعظت بکنم من با یه تب به این روز افتادم که دارم میمیرم او را عاشق کسی بشه که این امور در او راه نداره با یه طب از تو گرفته نمیشه معشوقی که اینجور دیوونش شدی با یه طب از تو گرفته میشه این میارزه بش دل ببندی دل با اون ببند که از تو گرفته نمیشود هر جامبری با تو است. بالا تر اوز، تر اوز، زیبا تر اوز، ارزنده تر اوز حالا اینا دیگه تعبیر است به این بیان اگر به زیبایی دلبستی، دلبستگی به زیبا تر که اولاست اگر به امور مجازی گذرا میخوای دلخش کنی بونی که ارزنده تره به اون خوش دلخش... کنی لذا یاد خدا یعنی توجه به با بالاتر توجه به با بالاتر از سقوط در عالم پایینتر انسان رو نجات میده. اینجا می فرمادی یا آمنو اذکر الله از ذکرن را و سبهوه بکرتن و اسیلا صبح و شب ذکر خدا بگو تصویهش رو بگو مشغول عبادتت باش حوالذی یسلی علیکم والملائکتو والملائکتوهو لی یخرجکم من الظلمات الى النور و بالمؤمنین رحیمه یه نکته اول در این سه آیه نماز بخونید، عبادت بکنید، صبح شب بیاده خدا باشید، ذکر یعنی چه کاری عبادت انجام بدید. همینجوری نیست که ولی بله آقا ما گفت خیلی دیر اومدم، زودم باید برم گاهی وقتا دیده میشه آقا خیلی دلمون میخواد ما در مراحل سیر و سلوک و در تکامل و قرب الالله با اون قله رفی برسیم خب خیلی عالی این فکر خب بقید چه اما اما زحمت زحمتم ندارم خیلی هم نمیخوام کار کنم اینجور نمیشه گفت خدایا جان به لب رسید تا جان به لب رسید نابرد رنج گنج مویسر نمیشود و زهرا علیها ظاهر زندگی دنیاویش این 18 ساله که شما دیدید این نمود پنج روزه بعد از پیغمبر تمام مصائب رو به جان خریده توی نوزده هیچده سال قبل از این افتاد پنج روز در دوران حیات پیغمبر در بعصت پیغمبر در هجرت پیغمبر همین نمونه هایی که برای ما نقل شده هم به عبرونه آبورده خدای مقاماتو بش نده زینب کبرا سلام الله علیه ها مگه شوخیه واقعا شنیدنش خودش برای انسان مشکله تا چه برسه واقع شدن در این مسائل یک بانو این همه مسائل نشون بدید شکایت کرده باشه گله کرده باشه خم به عبرونه آورده در حال رضای الهی از دنیا میره و ها کذا و ها کذا والا اونا که درجاتشون جداست چرا سلمان سلمان شد چرا ابوذر ابوذر شد چرا مقداد مقداد شد چرا فضا و اسما به اون درجات رسیدن قرآن رو ببینیم روایات رو ببینیم وعده دروغیم به افراد ندیم اومدی تو مجلس امام حسین و عزت زهرا و مشکی پوشیدی و یه مقداری هم ریختی و یه مقداری هم اطعام کردی و شما دیگه به اون قله رفی رسیدید کجا قرآن اینو میگه؟ کجا روایات اینو میگه؟ اگر منبکا او ابکا او تباکا داره شرایط در کنارش گذشته اینا رو هم توجه کنین نه تفکر وهابیت افراطی اونوری رو بگیریم نه تفکر وعده غلط دادن از فعالیت معنوی و کوشش در مسیر قرب الهی بازداشت مردم حالا آیه رو دقت کنید، این سعایه رو با اون چرا اینجا میگه و کان بالمؤمنین رحیما اونجا میگه یخص و به من منیشا اختصاص میده به یه ای که میخواد در اینجا آیه ای چلسته سوره احزاب حالا قبلش بحث داره روایت میکنم براتون و کان بالمؤمنین رحیما خدا به مؤمنین رحیمه رحمانیتش مال همه است اون وسعت برای همه داره ولی رحیم بودنش برای مؤمنین داره پس برای همه نیست خب چرا برای ایناست این رحمت، حالا قبل از این که چراییشو بگم بل مؤمنین رحیم ها برای مؤمنین رحیمه این رحیم بودن برای مؤمنین چه آثاری داره؟ لیخورجکم من از ظلماته النور نور هر چه رحمت بیشتر شد خروج از ظلمت و گرود به نور چیه بیشتره؟ زهرا فقط نور شد چون رحیمیت الهی برای زهرا اون قدر بود که یک پارچه نور شد یه شاهد بگم که چون ایامشون هست ممکنه بگید را از بس خارج میشم نه خروج نیست میخوام شاهد در این زمینه براتون بگم دلائل الامامه ابو جعفر تبری صفحه 19 احمد ابن محمد بزنتی از علی ابن جعفر نقل میکنه سمعت عبدالحسن حسن بن جعفر علیهما السلام از امام مصعب بن جعفر علیه همه سلام شنیدم یقون می فرمود رسول الله جالسان ازدخل علیه ملکون یه روزی پیغمبر نشسته بود یه ملکی یه وارد و با پیغمبر شد سقال انا محمودون با اصنی الله ان ازدجن نور من النور یا رسول الله پیغمبر من اومد خدا منو فرستاده اومدم خدمت شما رسالتی دارم رسالتم چیه؟ ان ازدجن نور من النور نور رو به ازدواج نور در بیارم قالم من و من, من گفتم کی برای کی قال فاطمه منعلیگه که از طرف خدا اومده از طرف خدا اومده به پیغمبر میگه من معمورم که به شما بگم ان ازوجن نورم منن نور میخوام نور رو به ازدواج نور در بیارم خب چرا اینو میگه نور؟ این بحث هایی. یا در آیه شریفه الله نور و سماوات و لعرض مثل نوری هی. کمشکات مشکات رو تمام مفسرین در منابع شیعی چی نفسیر کرده؟ از بیان امام فاطمه زهره سلام الله علیه ها شما مفسر کرده ایم شواهد به چیز چرا نورن به جهت این که کاری کردند اینو بفرمایید. بفرموید آیه مخوام شاید بیارمان کاری کردم رحمت خاصه خدا را خریدم رحمت خاصه خدا اونها رو فقط در عالم نور قرار داده حالا این آیه رو دقت کنید خب لذی اوس خدایی که یصلی علیکم بر شما سلوات دارد یعنی چی بحث میکنم و ملائکتهو ملائکەش بر شما سلوات دارند باز یعنی چی بمونه لی یخرجکم من الظلمات الى النور تا این صلوات خدا و این صلوات ملائکه شما را از ظلمت خارج کنه وارد مرحله نور بشید و کان بالمؤمنین رحیما تا خداوندم به مؤمنین این رحمت رو داره حالا دقت بکنید تو روایات چه زیبا جلد 90 بهار صفحه 16 و 17. هم از امام باغیر داره هم از امام صادق علیه ما سلام نافله زهر جمعه دعایی داره دعا یک سفر است یکی کشم میخوام براتون بخونم زهر جمعه میدونید زوال جمعه زهر جمعه یکی از لحظات خاص عبادت میگه نافلم اون مستحباتی که قرب نوافل نسبت به قرب فریزه خیلی ارزنده تره میگه وقتی نافله زهر جمعه رو میخوایی بخونی اون داره رو یه یکی کشینه ورفع درجتی به رحمتک اولا رفعت درجه مطرح میشه در این نردبان ترخیر شوی عالم بالا لیو خرج کن منت ظلمات ال نور شما رو از این ظلمت ها بیرون ببره وارد عالم نور کنه وارد عالم نور شدی، به اقتضای نورانیت آثار نوری داشته باشید ورف درجتی به رحمتک میگه این دعا رو کن درجه منو رفی کن ببر بالا در اثر رحمت در صلاح سائل و مصباح شیخ این مطلب نقل شده در بهار جلد نود سه صفحه سد و از محاسن برگی صفحه 221 و و میگه امام صادق علیه السلام فرمودند پیغمبر یه روز ائته خاصی از اصحابش رو جمع کرد فرمود الا اخبرکم بخير اعمالکم و ازکاها عند ملککم و ارسع احی درجاتکم ببینید چند تا خصوصیت یک خبر بدم به شما به خیر اعمالکم پس ما وارد عمل نشده باشی دو بشترین عمل شما میدونید چیه و از کاها انداملیک کم دیشتر بحث فی مقعد صدقن انداملیکن مقتدر مال اون مقام قرب اون ادامه شدارم میگم. گم پاکیزتر و عالیتر در پیشگاه او در اون مرحله و ارفعها فی درجات کم بالاتر در درجات وجودی که برای شما مطرح کنم خبر بدم و خیر لکم من الدینار و درهم فکر نکنید پول و درهم و دینار اینا اصلا قابل مقایسه با اینا نیست خیلی بالاتر از یه حرفا نه بعد پولیشون میده که یه وقت مقایسه با مادیات دنیا به عنوان مادیات نکنید چون مادیات عامل معنویت میخواد بشه لذا اینو میفرماذ و خیر لکم من ان ادوکم و تقتلونهم و هم. حتی از جهاد در راه خدا به دشمن دین میرسید میجنگید شما شما رو میکشید اونا شما رو میکشن جهاد فی سبیل الله از می... اینم بالاتر فزال الله المجاهدین علی عجرن اجرا عظیما میگه از اینم بالاتر و حافی درجاتکم قالو بلا بله یا رسول الله چیه قال ذکر الله کسی را خیلی خدا رو توجه داشته باشیم. میشه نماز بخونیم خدا رو توجه نداشته باشیم میشه یا نمیشه خود قرآن میگه میشه ویلون للمسلیم این پس خلوص در عبادت نیست مزا میکردم با یکی از دوستان قبل از جلسه گفتم یا آقای میگفت من کارام حسابراسیه هر وقت تو حسابرسی اختلاف حساب پیدا میکنن میگم پاشم نماز بخنم چون تو نماز یادم میاد مشغول نماز شم. یادم بیاد خود این که نمازی خلوص در عبادت لذا این آیه که بیان میکنه و کان بالمؤمنین رحیما مؤمنو داره مشخص میکنه قد افلا المؤمنون هم یا آیه الذین آمنو اذکر الله از ذکرن کسی را و سبهو و بکرتن و اسیلا حوالذی یسلی علیکم اینجوری که شدید این خدا بر شما یسلی سلوات داره و این سلوات یعنی چیه اینه سلات من الله الرحمه تو منابع حدیثی ما داره سلات خدا بر شما یعنی رحمت دیگه بحث فرصت توضیحشو ندارم انشاءالله بعد عرض میکنم صلات ملائکه بر شما یعنی چی سلاط ملائکه بر شما روایت داره یعنی استغفار صلات انسانه ها بر شما یعنی چی یعنی دعا انسانه های شما رو دعا میکنن ملائکه برای شما استغفار میکنن خدا یصلی علیکم یعنی رحمت رو شامل حال شما میکنه رحمت به شما میفرسه این رحمت رو کی میفرسته که اون رحمت شما رو از ظلمت خارج کنه وقتی که اذكر الله ذکر را این اذكر الله ذکر را رو حضرت زهرا فرمود من اسعد الى الله خالص عبادته عبادت خالص بشه چرا حالا نزدیک شدم به این بحث بعد از سه شب چرا چون نقطه مقابل خلوص چیه شرک به هر میزانی که عبادت از خلوص خارج بشه شرک توش را راه فیدا کرده یعنی غیر خدا مطرح شده به همون نسبت که غیر خدا وارد شد از انایت رحمت الهی کاسته میشه کاسته شد ظلمت میشه اون یه وقتی انسان به خودش میاد همش تاریکه همش است کرا چون میبینه یک مرحوم خاج نصیر یه بحث خیلی قشنگی داره خاج نسیر مرد خدا مرد عجیبیه این مرد خاجه نصیر یه بحثی داره خیلی زیبا میگه مردم از گناهانشون توبه میکنن من تصور میکنم باید از عبادتم توبه کنم چرا؟ میگه برای این که وقتی دقت میکنم این عبادت من چقدر عبادت بود چقدر برای خدا بود حتی از عبادتی که برای خدا نبود باید توبه کرد تا چه برسه به گناه پس من اصعده الله خالص عبادته در این عالم ما بی فعالیت بی تحرک بی عمل نمیتونیم باشیم هر کسی در این عالم باید حرکت و فعالیتی داشته باشه حالا در این حرکت و فعالیت دو انگیزه کلی کلی که هر چه شما انگیزه های دیگه در این عالم پیدا کنید بنده ادعا میکنم خواستید فکر کنید با هم بحث کنیم در زیر یکی از این دو عنوان میاد زیر مجموعه این دو عنوانه یک برای خدا. حیف میکنم لذت میبرم خود خواهیه اما میشه همین خوردن برای خدا بشه بله الاعماله ب... واقعا نه این که اخه بعضی های یه زیرکی های عجیب و غریبی دارن خیال میکنن این زیرکی ها رو تو مسائل دنیوی که میخوان پیاده کنن تو کارهای خدایی هم میشه پیاده کرد که روغن چراغ ریخته رو وقت از تبلپس کنیم بگیم سبابم بردیم این بازیگریانی است در کوی ما شکسته دلی میخرند و بس. حقیقت ارزش داره چرا قرآن میگه؟ قبول میشود منل متقیم دو تا انار دوزید امام صادق علیه السلام از دور میدید دو تا انار دوزید رد شد یه انار رو در راه خدا بخشید انار دیگرش مثلا وردش را که کردی؟ گمه مگه خدا تو قرآن نمیگه هر گناه یک معاخذه و مثلا جزا داره هر کار خیر ده تا من دو تا دز دیدم، دو تا گناه کردم، دو تا جزا دارم، یکی بخشیدم ده تا، تازه هشتم طلبکارم. گفت: عجب این قسمت آیه رو دیدی؟ نعمنو به بعضن و نکفر رو به بعض، چرا قسمت دیگه قرآن رو ندیدی؟ مگه نفرمود تقد... خداوند فقط از متقین قبول میکنه از غیر متقین قبول نمیشه این اصلا زمینه قبول نداره تا قبول بشه، تا اون دهتا روش بیاد. نه این زرنگی‌ها در اینجا مطرح نیست. مسئله خلوص که این دو انگیزه نهایی که عرض کردم حتی خوردم خدا خواستم مکتب خدا خواستم انقدر تو عالم بالا باشیم هیچ چیزی دل شما رو به خودش مشغول نکنه جز خدا لذا اون امتحانات حادی که امتحان مال قرار میده امتحان جان قرار میده امتحان فرزند قرار میده امتحان مقام قرار میده های گوناگونه گذرگاه ببینید چقدر خدا برات وای نیسی یا رد میشی لذا حتی خوردن خدایا تو مقرر کردی من در این عالم آب بنوشم تا زنده باشم من تابع نظام تو ام اگر این شد ممکنه بگید که واقعا میشه ساده سا میکنم خدمتون ببینید چجوری میشه کسی که فهم نسبت به ضرر بیماری و لزوم دارو و پرهیز نداره رعایت پرهیز و دارو نظارت بزرگترها رو میخواد کسی که فهمش رو داره آیا مزه دارو زیبایی وستهبندی های دارو شکل و قیافه دارو مطرحه یا انگیزه فهمی در اثر بخشی دارو محرک مصرف داروه و همچنین پریز فهم میاد بالاتر فهم عبودیت در عالم این فهمو ایجاد میکنه ما انا لله و انا الیه راجعون اصلا برای به سوی خدا رفتنیم وقتی برای به سوی خدا رفتنیم خوردنم بس برای اوه برای او باشه او میگه اینو بخورانو نخور اصلا لذت میبره آقا آخ اونی که اون معنی کرده چقدر خوب می که اصلا این معنی براش پیدا نمیکنه. حتی ازدواجش برای اینه که خدا خواسته بله خدا گفته که خب پیغمبر گفتن چی که خدا گفتن نکاحو سنتی تو قرآنم اومده که این ارزش ازدواج خدا یا تو خواستی ازدواج کنی من به عنوان یک عبد که تابع نظام تو ام. انگیزه ها میره بالاتر اما اگر اینجوری شد اثرش تو جامعه چیه ؟ خدا نشد خودمه ازدواج میکنم چرا؟خب منم دلم زن میخواد. خانم دلم شوهر میخواد خیلی خوب حالا گرفته خودم مطرح شدم خب وقتی من بر مبنای خودم هم سر گرفتم زندگی خانوادگی بر مبنای خودخواهی باید بشه. بر مبنای خودخواهی شد چرا زن به مرد کلک نزنه؟ چرا مرد به زن کلک نزنه؟ و خودخواهی مطرحه هر زرنگتر میبره؟ هر که بهتر میتونه کلک بزنه به بهتر میبره. لذا اونجوری میشه که با من گفتم زن و شوهر جفت دانشجو بودن، پیش خود من شکایت کردم. شوهره گفت هر وقت فامیلای من میخوان بیان خونه، خانمم میگه آخه نمیدونی ما دانشجو هستیم. خب بفهم اینا بفهمو ما دانشجوییم درس داریم، امتحان داریم. حالا صبر کنن درس اون تموم بشه. فامیلای خانم که میخواد بیاد خانم میگه خب ازدواج کردیم که دیگه نمیشه. به فامیلا گفت ما درس داریم، چاره ای نیست. اینا حق این یه عبد خدا نمیتونه اینجوری باشه این زندگی بر مبنای خودخواهی بله بر مبنای خودخواهی اون خانم زرنگ پیشم میبره برد بله برد ولی بر مبنای خداخواهی خواهی بد شد زهرا سلامالالیه ها چجوری زندگی کرد چون اخلص عبادته مطرحه چجوری نه سال تو خانه علیه همه چیز رو تحمل کرده حالا تو بسپره چشماش دوخته به علی علی جان راضی هستی از من همسر خوبی بودم چون خدا گفته همسر باید از همسر راضی باشه چی میگیم ما؟ دم از زهرا میزنی؟ دم از علی میزنی؟ پیغمبر وارد شد بر خانه علی و زهرا. دید زهرا داره با آسیاب دستی کار میکنه علی داره آتش تو تنو روشن میکنه و هر دو خونه مشغول کارن فرمود فرموید کدوم یکی خسته ترید کمکتون کنن؟ زهرا صدا زد یا ابتا علی بیرون مشغول بود حالا اومده تو خونه میخواد کمکم کنه بابا جون به علی کمک کن امیرالمؤمنین فریاد زد یا رسول الله نه زهرا خیلی خسته شده علی میخواید کمک کنید چه خبره شب عروسی علی و زهرا ما این رو داریم همه برمیگرده به خدا خدا خدا خدا خدا برای خدا آی جوان، آی میانسال، سال، آی مرد، آی زم تو به خاطر خدا وزیفت تو عمل کن اگه طرف تو قدر ندانست، ندانه تو به خاطر طرف بکنی شریکه تو به خاطر خدا بکن خاجه خود بنده بربری دانه. تو وظیفه خدایی خود تو انجام بده منتها خدا هم از اون خدا هاستا. از او خداست. گاهی امتحانتون میکنه اینه چقدر واسطه دید آیا به این جهت خدایی انجام میدید که مواهبش رو ببینی وای نمیکنه. ببین شما به خاطر این پاست شد همون عبادت تاجر پیشگان تو همین پله نگه داره راضی باشه میده. مثال دیشب یادتون بیاد. برای قضا رفتی تو جلسه بد میده. برای تو مطلب دیگه نمیبردت. ولی اگه قضا رو گرفتی میگه والا ممنونم اما من اینو نمیخواستم. من بالاتر را میخوام. میگه پس بیا. در اندرونم برات باز میکنم. لذا تو این طله ها خدا قرار میده ببینه هر تو مرحله ای که در رو وا کنه ببره داخل یا نه میگه این بحثشه از اینجا جلوتر دیگه نمیتونه بیاد اون وقت شب اول عروسی علی و فاطمه است بعد از اینکه جمعیت رفتن و پیغمبر دست زهرا رو تو دست علی گذاشت مستحب این آدابی که توی روایات مام هست بزرگتر بیاد سفارش کنه موعظه کنه مسائل دست زهرا رو گذاشت تو دست علی اول به زهرا فرمود دخترم برای علی دقت فرمید برای علی کنیز خوبی باش تا علی برای تو قلام خوبی باشه بعد به علی فرمود علی جان برای زهرا قلام خوبی باش تا زهرا برای تو کنیز خوبی باشه نقل به معنا یعنی بحث زرنگی دنیا خدا یا خداس یا دنیا دیگه از کردیم یا خودقایی آقا گرگر رو در هجله باید کشت چشم زر باید گرفت که به این حرفا یعنی چی؟ تو جامعه خدایی حرفا یعنی چی؟ خدا نباشی حرفا هست این حرفا بیاد آمار طلاق تو تهران بیست درصد شد آمار رسمی وزارت دادگستری در سال گذشته بیست درصد طلاق تو تهران فاجعه نیست پنجمین کشور دنیا شدیم در طلاق. پنجمین کشور دنیا شدیم در طلاق. بی آروف بگم خدا داره در ما می میره دنیا شد. مسائل گوناگون چشمم چشمی شد. مسائل و و و خیلی زمینه‌های دیگه داره ولی همه این زمینه‌ها برمیگرده به مسائل بی خدایی، بی خدایی، بی خدایی، بی خدایی. خدای. ولی وقتی انگیزه خدا شد، یک انسان بر مبنای خدا حالا زهرا سلام الله علیها تو بستر این همه مصائب رو زهرا برای چی تحمل کرده؟ برای دفاع حق از علی طلبکار علی من به خاطر تو پهلوم شکستم من به خاطر تو بازون ورم کرد من به خاطر تو سیلی خوردم این که نعوذ بالله من زبانم بریده باد میخوام اینجوری بگم مجبورم در مقام طبیین مطلبم اینجا که زهرا وظیفه دینیش از امام حمایت کنه اونجایی که شاید وظیفه صددرصده واجبش نبوده تو مرحله مستحباتش هم این حرفو نزده بارها شنیدید. حیف حیفم میاد بگم برم تو ذکر مصیبت سلمان میگه غروب بود تو کوچه بنی هاشم رد میشدم در خانه علی و فاطمه دیدم باز و بسته میشه سرک کشیدم چه خبره امری دارید زهرا سلام الله علیها از پشت در صدا زد سلمان علی رفته درآمد فدک و جمع کنه نیومده میدونم فقرا دور علی رو گرفتن علی کسی نیست که یه فقیر باقی باشه چیزی به خونه بیاره همه رو بخشیده حالا میخواد دست خالی بیاد خونه روش نمیشه من دارم سرک میکشم اگه تو کوچه ها علی رو دیدم به استقبالش برم بیارم سلمان میگه گوشه کوچه نشستم یه وقت غروب دیدم علی داره از دور میاد تو رفتم جلو آقای جزمیدی با شما بیام تو خونه بیا سلمان خدا میخواد سلمان ببینه ما بفهمیم سلمان میگه با علی وارد شدم زهرا به استقبالش اومد با چه گشاد روی علی رو تحمیل گره بعد فرمود علی جان من همراه تو هم اگه تو تشخیص دادی اون که از پدک بود به دیگران ببخشی منم با تو همراهم. هم. اما امشب علی تو خونه اومد زهرا استقبالش اومد من تصور میکنم، حالا برداشت رو من نمیدونم، نسبت به معصوم نمیدم. من تصور میکنم، یکی از مشکلترین شب عمر علی امشب بوده. چرا؟ به اندازه فهم خودم این دلیل رو میارم. دیشب، اگه دیرو بعد از زور زهره سلامالله علیه ها از دنیا رفت، امیر المومنین دیشب بدن زهرا جلوی چشمش مشغول غصب بود، مشغول کفن بود، مشغول دفن بود دیگه تا این مراهل انجام بده شب تقریبا به های شب کشیده شد اما امرو غروب اولین مغربیه که علی متوجه خونه بی زهره شب که تاریک شود محفل من عوض شم بسوزد دل من حال بیمونه سویارم چه کنم گره افتاده به کارم چه کنم نمیدونم از کدم نسبت نمیدم حدس میزنم از غروب امشب بریم تو خونه علی شواهد تاریخی دارم این حدسها رو میزنم ارز میکنم من تصور میکنم علی زانوی غم بغل کرده یه اینش نشسته گاهی هسنو نوازش میکنه گاهی حسین رو نوازش میکنه تصور میکنم زینب رسالت خانداری رو حس کرده مسئولیت مواظبت از بابای مظلومش رو حس کرده اما گاهی هم شک یواشکی یه گوشهی سجاده مادر رو باز کرده باشه مادر وقت نماز مغربش هاست اون نقمه ملکوتی تو امشب شب در فضای خانه ما نمیپیچه شواهدی که دارم عرض میکنم بلال میگه از آن گفتن و تعطیل کردم اعتصاب کردم قرر کردم رفتم بیرون مدینه که بست بشینم که منو وادار به اذان از آن گفتن نکنم عنوان اعتصاب منفی یه شبیه خواب دیدم پیغمبر خدا را بلال سری به بچه هام نمیزنی از خواب پا شدم صبح بسات رو جمع کردم به سوی مدینه به دروازه شهر که رسیدم بچه ها کردن بلال اومده من به همین هول میدادن من صاف سرم انداختم پایین اومدم تو کوچه بنی هاشم در خانه علی یال عجبین در چرا سوخته اما شاهدو که میخوام بگم با کردم تا وارد شدم دیدم علی زانوی غم بغل کرده گوشه نشسته تا چشمش به من افتاد فرمود: بلال میدونی زهرای ما رو از ما گرفتن بلال میدونی زهرای ما رو از ما گرفتند. الان ما نقل شبی امیرالمؤمنین علیه السلام به زحمتی بچه ها رو خواب میکرد ولی دل علی با زهرا مگه میتونه جدا بشه؟ در نیمه های شب اومده کنار قبر زهرا که با زهرا درد دل کنه. یه صدای پایی رو پشترش هست کرد حالا از اون اتاق به این اتاق، از حیات به مثلا اندرونه یا بقی نمیدونم هر جایی که زهرا سلام علیه ها دفنه علامان و قل صدای پایی رو هست کرد برگشتید زینب کچلو سرش میها. دخترم کجا میایی؟ علامان و بابا جون مادرم به من وصیت کرد بابات خیلی تنهاست موازه به بابات باش